سوره قیامت. <خيامات تصفيق> <تصفيق> <أعوذ> بالله من <الشيطان الرجيم> بسم الله الرحمن الرحيم. مومالام ولا اقسم بالنفس اللوامه أیحسب الانسان أن لن نجمع عظامه به نام الله كه بخشاینده وو بارحمت است نه قسم به روز قیامت و قسم به نفس سرزنشگر که قیامت آمدنی است آیا انسان میپندارد پندارد هرگز استخانهایش را جمع نمی آری ما حتی قادریم دوباره سرنگشتانش را مغزون بسازیم نه انسان در آینده نیز اراده بر انجام گناه دارد حال که می روز ریامت چه وقت است؟ هنگامی که چشم ها خیره بماند و ما تاریک شود هنگامی که خورشید و ما در یک نقطه گردایند در آن روز انسان فریاد میزند راه گریز کجاست؟ هرگز هیچ راه گریز و پناهگاهی وجود ندارد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 بر آرگاه همه در آن روز تنها نزد پروردگارت است در آن روز انسان از آنکه که پیش فرستاده و یا از خود باقی گذاشته باخبر می شود هر انسانی بر نفس خویش بسیدت دارد هرچند که عذر بانه بیاورد زبانت را برای خواندن قرآنی که به تو وعی می شود شتابانه حرکت مده زیرا گردآوردن، و خاندن آن به عوده ماست. ما هرگاه ما خواندیم تو هم از آن خواندن پیروی کن. بیان و شرح آن نیز به عوده ماست. ما چون این نیست. بلکه شما این دنیای زودگذر را دوست دارید و آخرت را رها کردید. در آن روز چهرههایی هستند که زیبا و شادمانند و نگاهشان به سوی پروردگارشان است و چهرههایی هستند که در آن روز در هم و غمگینند زیرا یقین دارند مجازاتی است که پشتشان را می‌شکنند آری هنگامی که جان به گلو رسد و گفته شود آیا کسی هست که این محتضر را نجات دهد یقین می که روز جدایی او از دنیا فرا رسیده است ساقه پاها به هم می پیچند. آن روز روزی است که همه به سوی پروردگارت روانه شود. او صادقانه ایمان نیاورد و نماز نخوند ولی حق را تکذیب کرد و از آن روی برگرداند ورگا به سوی اهلش میرفت متکبرانه قدم برمی داشت پس وای بر تو وای بر تو ای بنده ناسپاس، باز هم وای بر تو وای بر تو ای بنده ناسپاس آیا انسان میپندارد پندارد به حال خود رها شده است؟ آیا انسان غیر از نطفه از منی که در رحم ریخته شد چیز دیگری بود؟ سپس لخته خونی شد و انگاه خدایش قامتش را برافراشت و از او زوج مذکر و معنیس آفرید؟ آیا چنین این کسی قادر نیست مردگان را زنده کند فجعل من الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العلي العظيم راست گفت خداوند بلند مرتبه بود از این کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و